ای دلمه و معشوه بکن در باقی، سالوس رها کن و مکن زراغی، گرپیر و احمدی خوری جام شراب، هوز که مرتزاش باشد ساقی. بر سنگ زدم دوش سبوی کاشی، سرمست بدم که کردم این او باشی، با من به زبان حال میگفت سبو، من چون تو بدم، تو نیز چون من باشی. بگرفت مرا ملامت از ذراغی، برخیز و سبک باده بیاره ساقی سجاده و تیلسان به میساز گروه تا بوک شود لاف من اندر باقی. ز خود حساب اگر با خبری، کبل تو چه آوردی آخر چه بری، گویی نخورم باده که میباید مرد، میباید مرد اگر خوری یا نخوری.